الله اخبار کنم، بیدای کنم، بدداوا کنم، داوکم مزدور، داوکم ملک استخفار. چی باید بکنیم؟ در اطلاعات داخلی و خارجی. چی باید بکنیم؟ چهار کردیم که بین این بین چی هم مطلاع میشی. فکر این را باید بکنیم؟ احتمالاً چهار کردیم که موندیم بیترپرست. اشکال در این هست که خودمون از لحن نیک کردیم، من کردیم، من خاین کردیم. حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم اگر ما خودمون اسلامی کردیم این بلا ها لا فرمود نگویم به شما الله ااق بروکن به داکم به دوکوم دا اوک مضضود دو اوکو مو اگر ما خودمون اسلامی کردیم این بلا ها بتلا